للرب عندما رايت الله <سؤال> الله در روایاتی که ما در باب سهر داریم ابتداعا متعرض روایاتی که وارد شده بود از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بعد بر اینکه این روایات باشه متعرض یک مقداری و که اهل سنت در این اناوین دارن از این اناوینی که ما در اینجا داریم بعضیاش خیلی چون نزدیکه به همه و خیلی از مردم معتقدن که در مثلا مردم دقت نمی کنن و اینگاه این با اشتباه باشه مثلا حضرت زمهرج منجم خبریت از نجوم جز باران این جو چیزا این مثلا با کاهن با شاهر با اون کسی که رؤیه رؤیه به اصطلاح برای یه نوع دعایی بوده که خونده می‌شده برای بین بردن آثار این رو اصطلاحاً رؤیه می‌گوسن که شب مثلا در دوران پارسی هم یعنی عجی مثلا اونمانه بله این همان درش منطقه و بحث رویه بحث رویه و خصوصیاتش در میان اهل سنت نسبتا زیاده یعنی در که اهل سنت زیاد آمده انواع رؤیت ها اما در مصادر ما نیست در مساله صحیح بانه در میان اهل سنت مسئله سه به اصطلاح بیشتر اون به سه رسول الله آمده که اون یهودیه لبید ابن حسن گرفته بود و, و اون رو به اصطلاح داره اون روز و در سنگی گذاشته بود که من پیغمبر رو سهر کرد و توضیحات دادیم خیلی طولانی دیگه رو من فقط من یک نکته رو میشه دو دونو که عرضش بکنم یکی اینکه در این روایاتی که راجع به سهر، او که پیمان در این سهر رو کجا گذاشته؟ توش داره که تحت راآوфе، راآوфе و راآوфе، ره و آلر لعی، و با راآوфе است. این در دقت را، من اصلا کن راآوфе سنگی بوده که لبه شام می‌گذشته که یه سنگش برای آتشیدن. این هر، یعنی این تفسیر در میان اهل سنت شده و لاکن یک جور دیگر گفته شده چون چاه ها نصفه کوتاه بودند پنج متر و 6 متر اینجور چیزا اینجوریه گفته شده که سنگی بوده که پایین چاه بوده یعنی نه اینکه بالای چاه سنگ بزرگی بوده پایین چاه بوده و اون نیست یعنی که آف به ننبالا مثلا در بفار آف بفارم به ننبالا به اونم گفته شده احتمالا این به هر دو باشه یعنی به مثلا هم به این سن گفته میشده هم به اون سن و احتمال داره اینه فقط محطم توضیحش ارزه و اما راجع به خود این قصه لبید ابن یه اختلاف مایی درش هست در خیلی خصوصیاتش مثلا در بردیش داره که پیغمبر حبر بزن برده که جبری و میکانی لابنه بشه پیغمبر خواب دیدن پیغمبر که دو رفت داره که نه پیغمبر نشستو میشه گفتن تو حس کردی اینجا بزن برده گفتن که خیلی این قسامش این قسمت روایاتش مسترده به صحت و صبح هم پیش اهل سنت این رو باید صحیحه چون از در صحیح بخاری آمده و به اصالی متعدد و از آیشه نحن شده لكن در خود علمای اهل سنت ادریشون معارضه کردن قبول نکردن رسول الله نفس مبارکی که بالا بالاتر است که صحب بر حقیقت اثر بکنه و توجیح کردن که پهنبر هست که رو نیلاسی خنگین شده مثلا چون این عبارتی است دیگه مثلا پیغمان نشسته اونها قضا رو کردن نه اونها خوردن مثلا یه پرخوا قضا یعنی این قضا شده پیغمان هم شده بود که کار بکن انجام ندادن یا بکنن انجام دادن حالا چون یه مقدارش هم متاسفانه کلام از آیشه است و در انجام غیر انجام انجامش مسئله به اصلاح اتیان نسا هم توش شده احتمالا یه دیگری هم در این دروح ها بود. هر حال در ما داریم. سهی لبیده ده اصلا اما پیش ما سری و نیست به وقت ما سری و سند نیست پیش اهل سند سری و سند کسانی که که هم در روش شده تقریبا دو رفتر در روایت ما از علیه در روش شده در وقت اهل سند از آیشه در روش شده و در اید چین واقع شده باشه صحابه باشن زنهای دیگه پیلن بر باشن هفشت و زن بودن هیچ کدو منتقص ن این من که صحیحه ایه که روایت از امام صادق که فراستتون کاری الگوی از علی رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن رجالاتم رئیس عمر در جنب عایشه ظاهرا از دوغای خانم باشه به هر حال انصاف قضیه اصل هستی واضحه نیست چون محدودم و عرض کردم تعجب با اینکه اهل سنت روایتشون صحیح از صحیح بخاری قبول میگن سه کسی نموده یعنی اون مثلا پیرده میشه انسان احساس انسان میکنه خود انسانهایی رو نمیشه میگه به نمیش کسی کاری یک کمی احساس هنگیه میمان ادعا احساس این بوده نه اینکه یا احساس کرده که سر درشان انجام شده داره میشه اما تأثیر نکرده نه اینکه سر در فرق سه هزه پسته سه این پسته یه قسمت از بعد که یه قسمت تاریخی رفتی به فرق نداره توضیح دیگر یه قسمتی که رفتی به فرق داره که در فرق ما هست چون کاری اوقات میشه یک مسئله در فرق ما میاد یا این تازگی داره لیکن از ترم فکرشون در فرق حسنان سابقه داره یکی همین که انسان اگر سهر برد بود حل بکنه سهر رو باطل, باطل بکنه سهر رو باطل بکنه که این روایت واحده از پیش ما هلی دولا تردن که این روایت همه از کلم سرن سرنم دیر داره اما در مسادر سلاسی ما آمده ام در کافی و, و فقیل آمده و در برد مسادر در روزان با یک مقن با یک اختلاف به احساس سند آمده و از توضیح دازیم که همه اصابیش خالی از اشکال نیست دو سند داره هر دو خالی از اشکال نیست این راجعه این ببار و بعد ها مروح صدوب در حلال شرایط در خصالش این روایت رو نقل معنا کرده دیگه اونو در فقیه هم این واقع دقیقه من اون بیا ان توبت از صاحب ان یخوند ولایه توبه اید. تو روایت داره که این به ما من صاحب بودم و توبه کردم فهلی من محنش من توبه فقال حده تو روایت داره توبه اینه اما توی هل یه استظهار سرور اینجوری رو بیرند توبت از صاحب حالا من یه خوزیه ها دیدن که دهتر این مطن رو بایده کردن چطور رو آثار دارد هم این مسئله که انسان با سر باز بکنه اما نبنده ارسو داره تا اونجایی که من دیدم به ما بردیگرده در همین جا در کتاب بخاری باب آخر طبه بخاریه بابای آخر عنوان بابش هم اینه بابر هل یستخ را جن بابون یا بابر هل یستخ را جن سه که میشه سه رو باطل کرد و قال قصادر بخاری این کار رو میکنه میگه قدسانی فلانم فلانم قصادر حب چون قصادر در درم نگرد زیده تابعی نه این کارو میکنه قایی میگه بر رومی هم قصادر یا بر و نو گلا این بحث واسه باوکیه اینجوری میگه این همون زمینه بحث معروف اینه که برنامه به شیعه منتسب شد چون صدوق گوید او یه راه زران اصل اینه که تو اهل سنت اون بحث اصلی اجل تو اهل سنت بنابراین بنا این علمای ما مثل ما شاء الله کریمه حائری و دیگران این بحث مطرح کردن فکر نمی‌کنم اختراع باشه این مثلا الان این مطلب از قرن سوم مطرحه که سال بخاری ما با شرکت ها بخاری بیاره به توزی بخاری اینجوری بگه بقا به اینکه این که گفتن بگه به که به استلاحه و دارید این روزی ها تعلیه هم می بلا میگفتن بلا اینه یعنی بلا رفیه یه الا قطعه به صورت قاله باشه یه اینه یعنی حجته اگر رویه هم ق حالا چیجور شد؟ این مال قرن ثبونه علمای ما هر کدار ایدینگم دارند این ها بیرسو که اگر صدور همچون فقیق بخ قال از قال زراره این حجته اگه گفت رویه یا قال رسول الله این حجته رویه رسول الله این حجته یعنی مهمه آشابی کنیم دارد, دارد. دارد. دیگر هم. دیگر هم. چه شد که این مطلب در بین عهد سنت بود بیمناسبت هم هسته خیلی بحثه بیه بی هباره هم از این تا اون نکتهی که در کتاب بخاری بوده در نکتهی که در کتاب صدوبه این حالا فکرم نمی میکنم. از اونجا گرفتی هم داشته و ترورد و خاطره شده باشیم برهاب قال قطعه اوند در این کتابی کلا دست من هست که پسپل باری جلده دن پسپل باری که زشوه خوب مال محجم بر کتاب بخاری حساب این جوجه ها رو این جوجه ها رو که دنبال سند میگردن که بیرن تا بخاری از کجا بیرده از بخاری مثلا اینجا داره وصله ها عبو بکل اطلافی کتاب سنن این وصله او، یعنی این انقطاع رو برداشته گفته حضرت این بلاران فولان فولان مقروب میشه که بخاری اینجا که تعلیقاً انقطاع نقل کرده قبول داشته اون تو در طریقه مسیح پس همیشه هم اصل میشه برمیگرده به اصل صحابه رجالون بهی تب بون رجالون کلمه تب با مدنی سه در, در کتوکلوقت میشن تبه و حالا این رو در بحث باقیشم از این او یو اخذان امرأته یو اخذ به تشیز رو کردم نه چیزی دعایی میکنن در نوشتهی بوده می نوشتن بلی که مرد زن دیگه علاقه بشه به این تأخیر میگفتن اما اگر زن می که شوهر بود علاقه که دار کنه تبل می گفتن تبل تبله بعضی هم دوبله ضرب کردن تبله دوبله و تبله نه ها رسولان رسولله هم نه یکی با عنوان تحبیده یکی با عنوان دور کردنه او, او یا اخه دوام نمی ره، این جوری می دونیم. قا ای یا هندواعن می تونه بازش بکنه. او یا نشرب یا نوشرب. ما در بعضی روز دوستی رو نوشرب که مثلا برید رختی میگه که نشیپال میکردیم یا مثلا میگه اگر دیگر سه خریدیم در بهار براو بیابون بلوای بیابون بلند در واقع بلوای بازی رو بیه همه دیگه شون میاد آب رو بود بینی اون روز خوندیم چند تا نوشه تکرار خوندیم از همین شرح ها آشی این اصطلاحا نوشه میگن از خدم یک مشکلی که از در روغت عرب برای تمام اینها یه اصطلاحات خاصی گذاشتن بعد خیلی از مردم تسامح میکنن در همین کتا ها مفصلی تاریخ العرب تأخیز رو لانه جنب و محبت یه تلفید تلفید تأخیز به معنای ایجاد نفرته نوشه به این رو صحف که ظاهرن در اینجا ابتال و صحفه حال به هر حال اون رو نوع داره توضیح داریم و اون ما تصامح مابونه و ترسمات و های حجیل قریبیتی چشمند این چیزا همه تقریبا از یک والی حساب میکنن قال الله به پس اینه که از امام ساده نرسوده زمینه در فقط همه که داره در اینجا اینجا رو آمده اینمایوریون به حل اصلاح نقطه شو این گرفته چون با این کار میخواد باز بکنه سه رو میخواد اصلاح بکنه سه هم ما مایمتر فرم یونها هم بعدم داریم دنبالشه میگه اون چی که نافعه نهیونه میخوره این خلاصه عباس سهیدنه حالا این عبارت این طوریست که یوریون علیه اصلاح فهم ما ما ینفر فلم یونه ها. مراد ایشان چیه؟ مراد سعیب زموسیب چون روایت ما که ابهام داره هلیالا تعقید ابهام عبارت صدوق توبت و ساهرن یک خود نداره اما این استظهار صدوقه چرا میگن استظهار؟ شون از این بحث رو اشاره کردیم که به احتمال قوی یکی از واجبات بر انسان توبه باشه اگر گناه کبیری رو انجام سوایر توبه نمیخواد اما کبایر توبه میخواد از کرد یه رساله مرهوم استاد آ توی قواعد فقهی راجب توبه دارن زوانع بعدی از عبارات حتی روایات است که توبه واجبه که ایشان احتمال واجب عقلی باشه مثل وجوب که ما توضیح دادیم یک توبه واجب اخلی است یک توبه واجب شرعی است در توبه از کبارش اگه این صدور توجه به این عبارت داشته باشه مثلا بگیم واجب است در انسان ساحل به دقیقی صحبه جمع کن به دقیقی همه؟ توبه اگه بگیم مناگر این عبارت این چونگیم نکاته فنی رو خود دکر بکنید مرمون صدور خود این ماده لزام قدم های اصحاب ما خیلی مغرّب بودن که متن رو روایتو دقیق حفظ بکنه چون ممکنه یک کلمه اضافه بکنه منو average بشه ظاهرین عبارت اینه خودم ده شد معلومه اینو تصدیق می‌کنم از کلمه حل عل او صرف واجبه آیا واجب است هر صاحب کوته قر خون که چیزیه به اون سر یکی از واجبات بر اون که حل سه بکنه سرون خودش ترسیه که بهش مثلا ظاهره هست اینکه بشونن نژا رو بخودن خوب دقت کنید چی واجبه حالا اگر کتاب هست خدمتتون بخونید عبارت امین باب 24 تاریخ کتاب رسالی بود اما ما نشستیم باب 7 رو می‌بینیم و رو می‌بینیم اگه اون کتاب رسال هست در این کامپیوتر بیارید حدیث خود دار جو حمادی المحرج یا از توبه منها این مالی توبه در سوال را بیامده نقطه فرمید زبکه همید صدوم برداشت اون را زده به جواب این که این کمه های ما میگن این نکته تو سوال آمده نه تو جواب اگر امام میفرمو توبت رو از تحول بله در حقیقت این توبت و رو سازه رو یه جمعی کرده نرمون صدوم به سوال سؤال را و جواب امام این مشکل را هم. دارد همین مشکل هم. اما در این روایتی که از سعید اون مسیب سعید را اش... اشکال نیست اما امام فرانهول در بلا سرکت اون نقطه این ها در خود رو خوف در اینجا دو نقطه در کلمات سید ابن مسعود همینه، بتعارف، کلی ما ائمه اهل سنت یا صحابه یا تابعین، اصلا بعدشون بسیار مردمان خوشفهمی، یعنی تو این سال روز ابن آره گفته بود مثلا بخون و رض گفتیشون دا برسه ام نماری ولیدون به بعد گفته فرام مامایر فر خلب ینهم. اون چیزی که نافعه نهی نشده دو احتمال برای عبارت سعیل و مسعیل هست که طبعا احتمال داره که احتمال همین دو احتمال هم روایت امام رو تفسیر بکنیم خوب در قفل چون این فواهد جنبی داره فقط مراد اون تفسیری کلمات سعیل یه احتمالیست که ما در موارد هم و نه اجتماعیم نه زیاد مفرح کردیم خلاصی اون بحث اینه ما اصولا هر جا در شریعت مقدسه عمر داشته باشیم و نه داشته باشیم امر اطلاق پیدا میکنه اما نهی اطلاق پیدا نمیکنه. درسته نهی اطلاق پیدا میکنه اما امر اطلاق پیدا نمیکنه. مثلا اجازهات قرض نکن، دلت بشین نماز بکن. نماز بکن، اطلاق پیدا نمیکنه شامل هم بشه. نمیده تو بیا درش نماز. بخن. اما وقتی گفت قرض نکن این اطلاق پیدا میکنه، قرض نکن و برو با نماز شونده. این به واسه بحث برعکس تبیین میکنه آن در اصول ما تو بحث اجتماعی را هم نمیخوری بحث دیگه می‌خوری ولی از اون بحث اصول خود اصول فلسفه ما اتحاد ترکیبی، و ترکیب ساده، و ترکیب زمینی است. از این دوباره هر گونه و مزدا، و ترکیب اتحادی نیست. میگه همیشه نه و اختصاص به شرایط هم نداره. خوابیدنشگاه می‌تونه تفسیر قانونی است. شما می‌تونید دانسته‌های خود را محقق کنید. هر جا شما یک متن قانون می‌گذشید. اون جایی که متن قانونی شما نحیه این اطلاق داره همه جا رو میگیره اما اگر اهم داشت این اطلاق نداره همه جا رو میگیره مثلا اهم طبیعتش اطلاق ندار این یک نحوه برداشت لذا خیلی راحت میشه مسئله اجتماعی با این قاضی همدیش کرد زموشی پس اگر گفت دار این لا تسبت اثناظ داره یعنی لا اوشی... یعنی تو زمین قصیه قرار نخد تو زمین نخوا زمین قصیه به تو زمین قصیه نماز نذاره وجوب نداره اصلا رو تاسبت تو خاضه تمام لا دوجیه توشی... فشان توش نخو کار نمیره ترکیب ساختم سر نماز نیست کجای نماز با قصد دارید کار اینجا اصلا کاری اصلا معنای لا تسبت یعنی بس معنای یعنی تو خون نماز بخون، تو خیابون نماز بخون، تو باغ نماز بخون، تو کو نماز بخون، تو مدرسه نماز بخون، تو زمین کنترل نماز بخون، تو شما خالیه؟ اصلا دقت کنید، هیچ وقت آمر نه نهینی میشه، اما نه اصلاح داره است. این یه راه که صبر هر. ایران چرناست. یه راهی بیایید باعث دیگه شود داره که نه در هر دن شماره بشه اصلاح داشته باشه. هر که ایان از این است شاخب امر روی اوسید او ما سير پرد که این ها اصلاح شاخب شاخم وشن دلیل یاد عمل امر طبیعت نه اینطوره. اگر در سلا همین جد کنم همین اگر سلاف در ظآله قصد شاخب شاخم لیکن اگر شاخب اگر امر می اوخد لا تحصیب نیمونه سلده می افتید این مطلبی دیگر این طرف هست در طرف عکسش هم اگر در جایی نه شده از که دروغ نگو. اما یه جایی که رسید که اصلاح جامعه اصلاح دادو بینه یه خدمت میکنه. میگن در این جا بازم نه می افته. ممکنه نظر سعید نوسعید بین باشه این نماییوی دونه به اسلام یعنی اون نحی که در باب سهره هست هست اما اگر رسید به یک جوی که مفلحتی بود اون مفلحتی بیاد مقدر میشه شبیه اون نحی در که مختید در اجتماع نه شبیه اون هم در اینجا پس ممکن است نظر استقیده مونسایی مثل که که حرامه قبیهه اما اگر فایده بر مستردی بر مترفی شده دروغ مسلحتی دیگه لمیونتا هم دیگه نه همی یه احتمال داره که کلام و کلام امام صادق هم مراد همین باشه این مشکلش چیه از در فنی از در قبوقی از در قانونی همیش آخماره برمانی تبد جوح امروز نه اینجا که مورد در اجتماعه نه که بشه واحد نیست. عنوان واحدی که میستن دو اموان انتباه بر واحد دارن مثل اگر امر طبیعت و خبه دیگه نمونده که دو طبیعت صلاف و صدقه هست اجتماعشون در مثلافه نه در طبیعت نکنسته صلیل و صلیل حدیر مثلا. اینجا نیست روشن شده تا اینجا اشکال این یعنی این استدلال اگر مراد سیگرد و باشه اشکال این استدلال اینه که درسته ممکن است که حرام رقیت ازش بشه اما اگر مندوه نداشته باشه راه دیگه نداشته باشه مثلا اگر پرز این شخصی سه شده نخواهی سه رو باطل بکنید اگر با خوندن آیات کتاب یا با خوندن یا با نرشتن دعا سه ابطال میشه دیگه دلیم نیست مخواهیم با سه اپتالش بکنه این نقطه فرمیه را بکنیم درسته اگر رسید مثلا در واقع که خواهد آمد اگر انسان مخواهد جایی محضر از دروغ در در میگه اما طوریه ممکنه میگنم طوریه ممکنه طوریه بکنه طوری دروغ در ممیه اینه این ای محنیه اینیش ای یه اشکارش بینه که اصولا این مطلبی که شما و لذا هم از کردیم تو خود علمان ما هم در شهر این حدیث حلالا تقرد نوشتن هند باسه مراد نیست مراد با قرآن و آیات و دعا تو خود سنیان دارن تو خود احنی سنیان دارن تو خود همین کتاب بخاری که الان داری داریم بکنیم چند تا همین کشه یه بابی داره در همین جا بعد از اون بابی که با و دوا به عجیبته سر با خرما خرمای عجیبه که از خرمای مدینه است. این رو با سر تدادی بکنیم یعنی اینجور نیست که ما نحصله اون باشه درک کردیم این خودش یه بحثیست که آیا ما به می توانیم با سر به اصطلاف نفیش کنیم، برای یه روز کاملا میکنم. در کتاب شرفات ما در اتاق ما اما در ابراز اونها هم که من آنها را باب داده یا الله. این بابی داره با روحیت نبی که یک مقدار از اون های پیغمبر رو نمی‌کنه بابی قرار نمونن الان میشه بخوام بگم بابی صفحه 68 باد روما به فاطمه از این نشان باشه توی اگر راعی باشه مسر نمیه رمایرمیه رمیا نثر این رمی باشه و راعی با فاطمه احتمال هم در روابه باشه اگر روابه باشه جنب روبی است. روبی اون دعایی که خونده بیشوده تو دقت بکنی با دعا که یا نیست یا تو خودشونه بدرسیم میمادن این روبی میگوشن. اما اگر نام چیزی میگن و چیزی دیگه میگفتن روبی اینه به دعاست با باور یا روبی به فتح کتاب و یاد کردند نه با سر رسیده که خود این هم به صورت باب شروع سرکته به کتاب الله این عناوین ابوابی که خوده به اصطلاح بخاری گفته و نژاد در اونجا هم ایده ایشون گفتن مثلا قد قابه منح شده اینطور یلتم سمن من یود یلتم سمن یوداوی فقال انما نهى الله اما یزور ولن ین هم اما ین فر بینید تحبیه باز از سعید مصیب همین نروی دیگه موتون دیگه لا یرا بحثم هداکان به وجود سهرون انیم چیه الان منیوت لغا هم جدا بکنه فقال هو به سلام قال و کان الحسن یک را بزاره حسن بخشی این کار رو کراهت داشت یه لا یعلم مظاهر ک الا شاهدون ب بعد از نجم و در اغواشش گفت حالا یک نکته این بود که ما کردیم کنیم به نکته دیگری در کلامه که این نکته به نظر ما در کلام سید بن باشه که این نکته را توضیح میدن این نکته قطعاً در میان از ریاض ها بوده. و اون نکته این, این, این, این بوده که بخواین نه اینکه حل و سهر جایز باشه و عقد جایز باشه نکته این نبوده. نکته این بوده که ها میخواستن بگن ما منیت مجموع دلیلی نداریم، سهر به عنوان حرامه. سهر رو به لحاظ آثارش باید نگاه بکنید. خوب درک بکنید. که این زیرونه بحث ما یعنی شماید مهم بشیم اینجا به همین مناساز اقوالیش ها این نقطه رو خوب دقیق بکنیم آیا سهر به عنوان حرامه که بگیم برای حل و سهر جای تخصیص خود یا اصلا بگیم سر سهر به عنوان حرام نیست خوب کنیم سهر عنوان نیست که به نقطه حرام باشه اونی که حرامه آثاری که برش مترکتل میشه مثلا آخرین آفرینه شخصی مخواد یک کاری بکنه جروش میگیرم خیالات پیدا میکنه حالت مادی کولی ها پیدا میکنه دیوانه میشه اعصابش به هم میریزه مثل نتیجهش این میشه اگر به نفسی حرام نبود اگر جنبه اصلاح داشت این دیگه نهی نداره فهم ما ما یم فهم فلم یون هن. این مثل همه مثال معروف که مثلا بعضی دوست سال میکرد زن مثلا موسیحی یا قناه برای شوهرش انجام بده که محرم بشه یا نه این مقصدیس برای این که اگر قناه مصلقا و فی نفسه حرام باشه زن برای شوهر همونجور شو فرم میکنه یکی فرم میکنه اگر مثل مرمون فیلت کاشتابی گفتیم قناه حرامه چون مثلا زنهای نمحرم بر مرگ یا مثلا چون کمتر رقاصی بوده دماغ بود و اینا بود به خاطر این چه از گرد خب از انسان بود گینگیا این می‌شود رقص نمی‌شود رقص نه نه نه نه نه آن همینه چون یه وقت سکونی داری نه هر شب اگه زخم بشه چون جور دیگه می‌خونه بشه خود ها در یک محلی به معنی رفت اگر ثابت بشه که رقص به عنوانه من یه. چه ذن برای شوهر چه شوهر برای اما اگر ثابت نشود و رغب به عنوانه که شهر و قسم و اینا رو، برای اینی که الان حتی علمای ما هم پیدا اختیار دارد در این که مثلا موزه از اول کوی، نشا سکونیش قرار میگیره. نه ظاهر لواز سکونی این که این عنوان به نفسه حران. پس نوقیه بندی اون نقطه خرمین است آیا سهر به نفسه حرامه یا سهر به لحاظ آثارش حرامه اگر گفتیم سهر به نفسه حرامه چی میخواد برای حلد سهر باشی یا رو عهد فرامه حرام حرامه این نقطه کسانی نیست که می گفتن یک این حسن بخشی که نارو کردن و نمیشه و لظام برپر هم خواستی حل بکنی و لظام بکنم لا یعرف و لا که الا ساهران بود چه چقدر زرافت مکسه یعنی اگر کسی بخواد حل سهرم بکنه با سهر رویاز بگیریم سهر خودش حرام سهر مطلقا حرام پس روچن شد چون بعد آن این دکتر رو الان بگم یک کمی زود به می به اینجا اگر نصوال تباه استاد رو بیریشون خیلی از اون صور هشت نه سوده دست بهار اوزه خیلی هاشون حرام نیستیم صادق نیستیم یک سه حرام نیستیم پس بحث اساسی که ما تا بیش هم بحثت از سه حال شدیم یعنی ذهن آماده بکنی. بحث اساسی اینه که آیا سه به عنوان حرامه یا به لحاظه آثار رو میبینیم آه جمله تراخ دقیق کرد روشن شد و این مطلب رو هم شما مثلا شاید تعجب بوین بخش شیار میگه مثلا آره خوبی آمدن مطلب کردن اقسام سر رو از بردیش میکند مکاسب میارد مکاسبش مرو به ها گیرسه به از نیشابوری یه مال خود دهار نیست بهار از تفسیر نیشابوریش میگرسه مال خود صاحب نیست. نیست. نیست. نیست هشت سر رو اول پیام دانانشش مناقشه این یکی به نفس حرام نیست این یکی به نفس حرام نیست. این خیاض نفرمانید یک مصدقی که هر آن شده. شده میشه از اهل صحاب و تابعی مدر شده از اهد طابعی مدر شده که آیا سه به نفس حرامه خب روشن شد اگر به نفس حرام بود هم بشم نیست یا سه به نفس حرام نیست به لحاظ آصاره اگر به لحاظ آثار بود هم سه جایز میشه هم سه حرام میشه به لحاظ آثار از که مشکل ربایده که مازاری هیچ اشعار نداره هلده بلا سهبه و لذا حتی مثل سال بساری که اخباری انگیاتون باشه درستی علمان باب پرازار باب, باب و حکم حلل هسته یعنی خود ایشان خطوان ندام در در حدیث میشه که علمان ما گفتن حل و باید با قرآن و آیات و دعا و اینا بشه نه با خود سهر پس ظاهر بحث باشن شد چیون شو مسئله که هم به سهرم باید اون نکته فنیه بحثم برای شما روح مطلب روشن شایید شد روح مطلب اینه آیا سهر به عنوانه حرامه هر. یعنی عباس خودیم برای شما از حسن برسی و غیرش گفت که حسن برسی می که و کامل حسن یک رفو بله زالک و یکون لا یعلم و زالکه لا صاهر میگه به دفعه سهر یعنی سهر نفسی هرام لا یعلم و زالکه الا صاهر اما اون گفتوزه اما ما ماینتر فلم یدهان یعنی شیهی سهر به عنوان منهی نیست بله هزینه ضرر منه. و باید من یک میفانم. ام از حال میشی. اگر بذاری اتصالش و شد. و باید یکی یکی فرش نه. از آبی که میفادم آب بکنه. یکی از دویش نه. یکی از دویش حلاله. یکی شی. ما یاد بگیریم. تعلیم سه بگم در زرر نه. آیا حرامی است؟ یکی شمینه. آیا تعلیم سه جاییه زرر نه؟ این از کاره همونه. پس اصل مسئله اینه. من بیاواش که چنده بحث کردیم اون بیاورش وجود داره با روح و این مسئله از کجا در بیاد اصلش یک از آیات کتابی دو از روایا اگر یادتون باشه در بحث گذشته عبارت بخاری رو که خوندی مثلا بخاری داره با شرک و سرهم نرو بوبغا بخاری این روایت آورده روایت ابی هریره اکثر روایت ابی هریره به پیش ما هم الان هست میسن و عامه شو ما هم وارد شده جامعه حدیث خون اشاره کرده. که جوان احادیث سننی اشاره کردن که ابی هریره نقل از رسول الله اشتم و علم بظات و سر این افرادی کسانی هست که سر درنده چون در اداد شرک قرار داده شده بخاری اضافه بر این کلی هی زحمت کشه یعنی هر حدیثی که خونده محاجر کتاب داره در ضرورت نماز می‌خونه نمی‌ذاره اصلا سودا نم. ایشون بابو سهمی که قرار داده دو تا بابو سهمی رو بابو سه اولش و لا اله الا الله و لاكهن الشياطین کفر بود اول به آیات تنصب کرده آیاتی که دلالت میکنه برای اینکه سهر حرامه سهر به عنوان حرامه یکیش این شلاكه کفر که در روایت ما هم آمده ولای یوفله و ساهر و هیچو اذاب این سفر دلار کاری خیلی شدید یکیم از فتا تو نسهر و انتوم تبصرون یکیم یوخیل و علیه من سره سه چهار آیه بود در درواجات ما از این آیات ولی در آلمون لمنشتران مالهم ماله و مال هون. مال هون فل آخره که من خلاق بیکی که نسب شده این مجموعه ای آیاتی که به تعصب شده در این روایتی که ما داریم بین آی تعصب شده این یه جوری کبابرند یا حداقل حرام ما که خوف از آخرت منخلا تعبیر به چیز نه در جهنم به, به نار و آتش شدن نداریم یکی برادر که نشیا که خرو داریم خب ایشون اون آیه یا ان شاء الله بعد بحث فرض میشه میخوام یکی از مالا منفل آخرت این خلاق یعنی که مالا منفل آخرت این خلاق مثل یه بنابه یعاده پس یک وجود اده از آیات که از اونها استفاده می کردن. حرمت سهر رو دو وجود اده از روایات که من اگه یاد مواردون باشید از وقتی سابق در میان کتب اصحاب ما روایت صحیح واضحی در حرمت سهر ندارید صلی الله علی و صحابه از عهد صحابه تا زمان ما مرحوم آقای خویی این بحث مطرح شده که سر نفسه حرامه یا به لحاظ آثار متفر برات حرامه ما راه نظری جدیدی از 1400 سال تقریبا این بحث مطرحه صلی الله